Broadcasting live from Universal City, California. this m لس های دانش برنامه از انجمن استادان و پژشگران ایرانی من ارجمیشان گوناشمان و درود فراوان و آرزو این که هر روزتان نوروز باشد خوشحالم که با آقای شوبرسونم که در بنام امروز خانم دکتر جانس ماریدان و خانم دکتر میا نفا با استاد دندوشکی دانشگاه کالیفرنیا جنوبی و متخصص رشتهای گوناگون پزشکی بر بود خانم دکتر اولدگ از دانشگاه کالیفرنیا جنوبی USC برای ما پیرامون بازسازی مینای دندان با مولکولایی که همانند خود مینای دندان هستند و مانندان کار میکنند بایومائی مدیکس خواهند گفت اما پیش از گفتار ایشان به آقایی شما میرسنم که مانند 17 سال گذشته انجمن استادان ایرانی به دانش و مختگان های برجسته امسال گواهی آورد میداد و به برجسته ترین از میان آنها نشان و آورد ارزان تر خواهد داد جشن بزرگ داشته این عزیزان در روز یک شنبه می از 3 تا 7 پس از نیمروز در یو سیلی برگذار خواهد شد. دوستان به تانمای اپسی ای P S I H بروید و نام نویسی و اپلای کنید. همونطور که گفتم امروز خانم دکتر جنرت برای ما پیرامون بازسازی مینای دندان خانکف. خانم دکتر داک استاد از استرو در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی بیویسی هستم در 1984 در رشته می شیمی از دانشگاه بینگوریان بی ایس گرفتم بیشتر آف ساینس در 1986 مستر آف ساینس و در 1992 دکتورای خودشون رو بیشتش رو از غایستمن انستیتوت معروف گرفتم پس از اون در این رشته ستراکشور بایالوجی این از Instituteی وزمن بود و پس از آن دوره فوق دکتر هم گذند. در سال 2003 در یوسC است پروفسور شوند و از 2011 تنور پروفسور هستند اگه به پاپ م که اسی NIش National Institute of Health ی ملی به داشت آمریکا رجیکاری می که که گزارش های علمی آرتیکل ها پیپر های علمی رو به ما میدهند، میبینیم ایشان نزدیک به صد پیپر تکنیکی و دندان داشتن داشتند با سن کمشون که این خود نشان دهنده میزان کار علمی دندان بزرگی ایشان است. و از برکت این گونه ها و کشف ها و اختراح است که ما امروزه میتوانیم در زمانی کوتاه با درد و رنج کمتر و با کارایی بالا دندانهایی به دندانهای خودمون و شاید بهتر از اونها برای سالها و دعیه داشته باشیم خانم دكتور بر ما خواهند گفت که چگونه مولکولهای گوناگون ها، آنظیمها منارهها زیربنای دندانها و مینای آن را درست میکنند و در خلال دههها از یک پارچگی و کارکرد خود دفاع میکنند و به ما این شانس رو میدهند که دستگاه گوارش مان کار سنگین و پرارزش خود را به بهترین گونه انجام دهد مخانم دکتور دا. گگر ها های پژوهشی ارزنده از Nationalال of Health NIHیت اندرو آمریکا دریافت می کنندند و برای ژورنال های دندانپزشکی تکنیکی ارزنده ریویو می کنندند مقالی و سردبیر است. افزون بر همین ها خاام دکتدا آموزش و سرپرسی بسیاری از دندانپزشککن و دانشجویگان دکترا و ورای دکترا فوق دکترا پستاک رو هم انجام میدادند. در نیمه اول برنامه خام دکتدار به پژوهش ها یافته های نوین میپردند و در نیمه دوم ازسط تنفر باز میکنیم و ایشان همراه با خانم دکتر مریم نواب به پرسش های شما پاسخ انداد. تلفن ما را که دارید 323 512 7264. خانم دکتر مریم نواب فار تستلز ایرونا استاندارد 98 و برد برچریف بورد دنتستری هستند در ایالت کالیفرنیا. دیپلوماته کالیفرنیا دنتال بورد و مثل بسله کار علمیشون رو تجربه و تخصصشون رو صرفه در های کوناگون کاسمتیک اند فامیلی دیستریکتال و به پاسخ پاسخات به سوالات ارجعه شما اساتید شارل بود. سکر دکتر آلداک به برنامه مشاورش خوش آمدید. خیلی ممنونم سلام به شنوندگان عزیز و از, از این فرصت با اجازه استفاده میکنم و عید نوروز را به همه هموطنین عزیز تبریک میگم همچنین از شما آقای دکتر نواب از انجامن استادان و پجویشگران ایرانی اپسی و مدیریت رادیو ایران هم تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن که اینجا باشم پس ما سعی میکنم در اون نیم ساعت اول که به من این فرصت را دادید در قسمت اولش توضیح بدم چرا اصلا ما به بازسازی مینای دندان احتیاج داریم. در قسمت دوم من براتون توضیح میدم سعی می کنم که در برای پیشرفت های پژوهشی که در اخیره، که در این ده سال اخیر در گروه من انجام شده برایتون توضیح بدم. شما خواهید شنید که چطور ما از علم شیمی بیوشیمی، باوتکنولوژی، علم مهندسی مواد و حتی علم فیزیک، یا ننو استفاده میکنیم که بتونیم بفهمیم مثلا مینای دندان چطور ساخته شده به وجود اومده و از اون پایه ها و علم اساس استفاده بکنیم و بتونیم مینای دندان را بسازیم پس مینای دندان خب شروع میکنیم اصلا مینای دندان چیه؟ مینای دندان یک لایه چند میلیمتریه تقریبا دو نیم سه میلیمتریه که روکش دندانه و وظیفش اینه که حفاظت بکنه از دندان، از اوامل خارجی مثل ضربه ترشی، حرارت و غیره. و چیزی که مهمه که من تاکید کنم اینجا، اینه که مینای دندان بعد از اینکه ایجاد شدن، یعنی درست شدن دندان کامل میشه، به تکاملش میرسه. یعنی بعد از اینکه دندان از فک بیرون میاد. مینای دندان دیگه سلول نداره البته سلول هایی هستن که مینای دندان رو میسازن که من در قسمت دوم بیشتر توضیح میدم ولی بعد از اینکه مینا کامل شد دیگه اون سلول ها از بین میرن چیزی میگن که میگن ایپپتاسیس یعنی سلول ها دیگه نبیتونن کار خودشون رو انجام بدن به خاطر همین مینای دندان بازسازی خودشون نمی کنه. It does not regenera و وقتی که ما مقایسه میکنیم کنیم مثلا با استخوان میخواین یه استخوان هم یه بافت سخت دیگه ای که مثل مینای دندانه استخواان وقتی که ترک میخوره یا شکسته میشه به خاطر اون ساختمانی که داره به خاطر اینکه سلول ها قسمتی از ساختمانن خودش رو با میکنه. ما سلول هایی داریم آلا آ که یه مقدارشون میسازن یه مقدارشون بازسازی میکنن. استخان رو می ولی شما میدونین وقتی استخانتون ترک میخوره یه بندیت می ایت و استخان خودش رو میسازه ولی متاسفانه وقتی مینای دندان صدامه میبینه ما باید بریم پیش دکتر دندان پزشکای عزیز و به مسئله رسیدگی بکنیم پس من یه چند دقیقه توضیح میدم مسائل مشکلاتی که برای مینای دندان میتونه به وجود بیاد کلا مینای دندان سختترین ترین بافته سخت بدنه و استقامت های خیلی بالایی داره از نظر خاصیت های مکانیکی هم شفافه هم قابل انتفا... انعطافه و هم محکمه من بعدا دوباره وقتی که به ساختمانش رسیدیم اینو بیشتر توضیح میدم ولی با, ها... با تمام این خاصیت ها اواملی هستن که میتونن مینای دندانا خراب بکنن این اوامل میتونن خارجی باشن و میتونن داخلی باشن پس عوامل خارجی که مینای دندانا خراب میکنن یکی پوسیدگی دندانه که به انگلیسی بهش میگن کریز یکی فرسود، فرسودگی وسایش دندانه و میدونید ما خیلی از ماها شبا وقتی میخوابیم دندانامونو به شدت می و این باعث میشه اینو بهش میگن مکانیکال یا مکانیکال باعث میشه که مینای دندون ساییده بشه و فوق العاده اون زه کم بشه و بعضی موقعا ترکای کوچیکی ایجاد میشه که اون ترکا میتونه مشکلات بزرگی به وجود بیاره مشکل دیگه مشکل اروژنه که بهش میگن که اون فرسودگی و دلیلش اینه که اگه ما ترشی زیاد بخوریم مثلا لیمو بخوایم زیاد بخوریم یا مریض هایی هستن که نارت دارن مثل بولمیک و انورکسیا اه انورکسیک اه که به فارسی دقیقا نمیدونن ولی مشکل این اینها که بیشتر توی نوجوانان به جوانان هست که غذا میخورن بعدن بالا میارن به اون اسیدی میده باعث میشه که تمام این مینای دندان از بین بره پس این هم یه راه دیگه است که مینای دندان میتونه خراب بشه دا اوامل داخلی اواملی هستن که بستگی دارن به ژنای خود انسان خود بدن اواملی هستن که جنا و پروتین های که, که مینای دندن میسازن از اول خراب هستن وتشن دارن ما میگیم دیگرگونی به فارسی دیگرگونه اون امین امیننااسید که پروتئین ها درست میکنه اینها مریض هایی هستن بچه هایی که وقتی به دنیا میان از موقعی که دندانشون رشد میکنه از دو سالگی سه سالگی مینای دندانشون خرابه یا خیلی نازکه یا خیلی نرمه و واقعا ناراحتی دردناکی بچه ها از اول باید به دندانشون رسیدگی بشه. وی میدهخوا تو بر پیام ها و برگت بسیار فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آناهایم با رامین آریان. رامین آریان هستم بفرمایید. میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آناهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره. ممنونم، ولی به چه خاطر؟ کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش میکشیدی آماده ای؟ مثل همیشه من 100 درصد آمادگی دارم. <تصفيق> بسیار خوب. از امروز شما با همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشونو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. شما از این لحظه آغاز میشه. رامین آریان، ماش نوزری و مکس توهیدیان نمایندگان مورد اتمینان شما در مرسدس بنز انه هایم 639 58 728 1-800-639-58-728 به مناسبت فرارسیدن اید نوروز، فروشگاه انسار گالری 29 و 30 مارچ شهرک بازی و کارنوال کودکان را به هموطنان عزیز به طور رایگان ارائه میدن انسار گالری 25.05 El Camino Royal در شهر تاستن سوپر ستور انسار گالری با پذیرای نوشیدنی و فود سامپلینگ، همراه با موزیک زنده محیطی شاد و خانوادگی برای شما عزیزان پراهم کرده و در روز 29 مارچ بدون شرط هیچ خرید در قره کشی مرسدس بنز 2014 و 100 جایزه جایز دیگر شرکت کنید بعده ما 29 و 30 مارچ انسار گالری بیست El Camino Royal در شریت استن. تلفنی تلفات سی و سی. Gallery. ششصد AM های دنیش. برنامه‌ی از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی همین رو گرامی شندگان رجمند همونطور که گفتیم پای گفتاره سرکار خانمی دکتر مورادیان غلطاک استاد دانشگاه دندان پدشکی دانشگاه کالیفرنیا جنوبی یویسی هستیم که برای ما در مورد مینای دندان و آخرین پژوهش ها و کشفیات و اختراعاتی که شده که اون رو سازی بکنند برامون دارن میگن بفرم میخوام okay. دکتر من ش... م... میخوام یه مقدار آمار بدم اه... و این آمارا از همون وبسایت NIH National Institute of Science گرفتم که یه ایده داشته باشیم چقدر مشکل پوسیدگی دندان مهمه و این آمارا توی آمریکاست من میگم که دو دنیا است ولی تو فقط تو خود همین آمریکا تقریبا 92 دو درصد از ادموها بین 20 سالگی تا 65 سالگی پوسیدگی دندان دارن و این درصد برای بچه‌ها بین 2 سالگی تا 10 سالگی در مورد چلو یکه. پس واقعا مشکل بزرگی که باید بهش رسدیک کرد و میدونیم که وقتی که وز به جای میرسه که این پوسیدگی دندان بزرگ میشه نفوز میکنه به آج دندان زیر مینا و به عصب میرسه واقعا دردناکه و رسدگی میخواد و موقع یکی که باید به دندان پزشک مراجعه کرد و دندان پزشک ها از موادی استفاده میکنن که استقامت و مقاومت داره ولی کلن به اون خوبی مینای دندان نمیشه من زیاد نمیرم تو جوزیات به خاطر وقت ولی تا حالا من فکر میکنم دندان پزشک های عزیز موافقت دارن که توی 21 سنچوری یعنی صده 21 دندان پزشکی مدرن ترجیح میده که از پوسیدگی دندان جلوگیری بشه یعنی راه های پیدا کنه که بتونه از پوسیدگی دندان جلوگیری بکنه و هم بتونه دندان رو بسازه پس ما از استراتژی استفاده میکنیم که بهش میگن بایومیمتک همونطوری که شما شرط دادید از اول بایومیمتک یعنی اینکه ما از بیولوژی از طبیعت یاد میگیریم الهام میگیریم و اون قانون که طبیعت داره استفاده میکنیم و سر میکنیم که اونو توی آزمایشگاه تقلید کنیم البته من همیشه میگم من از طبیعت برای طبیعت خیلی احترام قائلم و با اجازه تقلید میکنیم یاد میگیریم پس کاری که کردیم معلیان چند ساله تقریبا 20 ساله که روی سر میکنیم روی مینایی فهمیم مینایی دندان چطور درست میشه و پژوهش ها توی گروه من روی اون پروتئین ها و انزیم ها و مواد عالی هستن که دندان رو درست میکنن برای درست کردن دندان چند تا مرحله داریم اولین که یه فضا میخوان که این فضایی که مینای دندان درست میشه بین آج دندان و بین سلولای هستن که حاضرن مثل سرباز استادان و هزاران که جنا، پروتئینا، آنزیما و تمام یونایی که احتیاج بدن بیرون یعنی تلاش کنند که بنیاد ساختن مینای دندان که از بلورای کلسیم فسفات درست شده درست کنند. اسم اون مینرالی که مینای می می‌سازه، بهش میگن کلسیم هیدروکسی آپتای. که یه مراکبه کلسیوم فاسفیته ام، که یه مقدارم فلورید و مگنیزیوم توشه ام بعد ما میدونیم که مثلا اون قنچه اول دندون در هفته 25 نطفه به وجود میاد کم کم بزرگ میشه از نرمی در میاد سخت میشه و موقعی که دندون دیگه از لسه اومده بیرون تقریبا 99 درصد دیگه مینراله یعنی ماده معدنی و بعد از این همه سال ما الان میدونیم که پروتئین هایی که در این فلو اینفولات رین فلو اینفولات کار میکنن من دو سه تا فقط میگم اسمشون یکی هست به اسم امیلوجنین به خاطر که من 20 سال آخر روی این پروتئین کار کردم این امیلین امیلوبلاستین ولی لیست دیگه برای اون شنوندگاه دانشجو که میخوان بیشتر جزیات بدونن میتونن توی مقاله ها نگاه کنن. ولی ما میدونیم که املوجنین یکی از پروت پروتین هاست که واقعا مهمه برای اینکه بنیاد اون بلور و کریستالا بسازه و اینا پ... یه پایه های که فقط توی مینایدندان نیست ما میدونیم که در بافت های سخت دیگه تو طبیعت مثل مرجان دریایی، صدف های دریایی، استخان ای، اینها همه از نظر اساسی همه شون هایی هستن که با ساختمان سبادی خودشون میتونن کمک کنن به اون بلورا که با ترتیب قشنگ با با جهش بتونن بزرگ بشن من به خاطر اینکه شما نگاه عزیز نمیتونن عکس ببینن با اجازهتون میخوام با چند تا چند جمله های ساده تشریح کنم ساختمون دند این ای ای ای مینای دندون اگه مینای دندون زیر میکروسکوپ الکترونی بذارین که بزرگ کردنش 10 به توان 6 هست ما ما, ما به ساختمانایی که نگاه میکنیم که اندازهشون شون نانومیتره که میشه ده به توان منهای نه واقع. بعد این کریستالا اندازه هاشون مثلا 90, 90 نانومیتر تا 1000 نانومیتره واقعا کوچیکه. ولی مثل اینه که فکر کنید یه بسته سپاگیتی هر سپاگیتی یه دونه بلوره یه بسته سپاگیتی رو بگیرین اونو بهش میگن پریزم اون پریزم آجدندنه و این بساط رو بگیریم به هم ببافیم. اوکی؟ و اون ساختمانیه من اینو میتونم بهتون نشون میدم. این ساختمانیه که دندان که مینای دندان داره و همین ساختمان و همین ترکیبات که اون استقامت و های مکانیکی مینای دندون رو می سازه. یعنی مینای دندون اصلا فوق العاده است. یک ترکیب از سختی و انعطاف. و شما نمیتونید به آسونی یه همچه موادی پیدا کنید. پس اگه فکر کنید استیل یا فلز خیلی سخته، محکمه ولی قابل انعطاف نیست. یا مثلا مواد عالی مثل کلاژن، خیلی قابل انعطافه ولی سخت نیست. طبیعت کاری که کرده اینا رو با هم گذاشته و با اون هم ساختمان و ترکیب یه کاری که کرده که هم یه ماده ساخته که هم استحکام داره و هم قابل این اتافه به خاطر همین تو توی اه, material engineering اه, مهندسی مواد دانشمنده واقعا براشون خیلی جالبه که بتونن از این ساختمون را یاد بگیرن پس ما کاری که کردیم این پروتئین املوجنین تجزیه و تحلیلش کردیم ما تو ازمایش میتونیم اینو بسازیم این را میگن recombinant synthesis گذاشتیم توی بکتریا میتونیم بزرگ کنیم فرمولای درست کردیم که میتونیم اه, کریستال بزرگ کنیم که خیلی شبیه این عمله پس کاری که کردیم ما با از همون خود یو ایسی دندون هاییم عقل بیمار که دیگه احتیاج ندارن میگیریم البته همه اینا با اجازه هست با عره قاش میکنیم و این تیکایی کچیکو میذاریم توی فرمول فرمولی که هم بزاغ دهانه میتونیم حاضر کنیم هم کلسیوم و فسفاده تمام اون ترکیبایی که احتیاجه و بعد از چند روز نشون دادیم که یه لایه فوقلاده مرتب با جهتی که تمام اون پریزما روی مینای دندون هستن درست شده و این نتیجه ها واقعا هیجان انگیز ما بود. این اکسایتد میشه هیجان انگیز من دوسته تا روی این مسئله چاپ کردم تو جورنالایی مثل بایوماتیریال و نشون دادیم که این پروتئینه که این کار رو میکنه طوری که به حالت استبودی خودش میشینه طوری که این اطما رو به هم وصل میکنه ملکولا رو به هم وصل میکنه پس چی؟ پس الان باید کاری بکنیم که در آینده بتونیم یه ای که فایده داره بسازیم یعنی از نظر پژوهشی، از نظر علمی، از نظر علمی ما ثابت کردیم خیلی چیزها. ولی حالا باید یک قدم بریم جلو که برای کلینیک خوب باشیم به خاطر اینکه یکی اینکه وظیفه ماست به خاطر که ما داریم بوجهون از نشنل انستیتوت آف هلت مسئولیت داریم که اون علمی که یاد میگیریم برای مردم خوب باشه ما نمیتونیم فقط پیپر پابلش کنیم ما فقط نمیتونیم مقاله بنویسیم پس کاری که کردیم سعی کردیم الان یه جل بسازیم از کایتوزین استفاده کردیم کایتوزین هم یه ماده هی. یه ژله که یه پلی که وقتی اینو داخل میکنیم با پروتئین خودمون امیلوجنین یه جل خیلی خوبیه قشنگ میتونین نگهداری روی سطح همینای دندان میذاریم می‌ذاریم نیم ساعت خوش بشه میذاریم اینو توی بزاغ مصنوعی که توی آزمایشگاه درست کردیم دوباره دو سر صبر میکنیم و وقتی دوباره میریم زیر میکروسکوپ الکترونی و ساختمانی اون لایهی که ما درست کردیم میبینیم واقعا باور نکردنیه یعنی انقدر شبیه به خود مینادندان که من پست دکترانت اما چند روز راستی آلسیاتش کردم گفتم ببین باید اینو ثابت کنی اینو ثابت کنی اینو ثابت کنی و چند جور سه سال رو این مسئله ما کار کردیم و نشون دادیم که اون لایه‌ای که ما ساختیم چسبندگیش واقعا عالیه. روباست چی میگن؟ خیلی محکمه <تصفيق> یعنی اون بستگی که لایهی که ما ساختیم با خود مینای دندان از نظر شیمی به هم وصله و این خیلی مهمه به خاطر اینکه تو دندان پزشگی میدونیم موادی که ما استفاده میکنیم هر چقدر خوبن بعد از چند سال میتونن جمع بشن و یک فاصله بین خودشون به مینای دندان درست کنن که اونم دوباره باکتری ها میتونه نفوذ بکنه و مشکل ایجاد بکنه وی این مسئله ادهیژن که یعنی چسبندگی مواد تو دندان خیلی مهمه پس از نظر مکانیکی ما چند آزمایش انجام دادیم و نشون دادیم که استقامت این لایه خیلی خوبه مخصوصا وقتی املوجینین اضافه می البته هنوز به استقامت اصلی مینایی دندون نرسدیم هنوز باید روش کار کنیم که این ساختمانه اون بافت ما هنوز نتونستیم درست کنیم و هنوز باید چند مرحله دیگه پیش بره که امیدواریم که در دهه آینده بتونیم بهش برسیم ولی این موادی که حاضر کردیم اتفاقا خیلی از شرکت ها یه من سه دارم برای این مسئله که کار میکنیم برایشون خیلی جالبه و میخوان یه همچه ای رو واقعا میخوان داشته باشن و اون جلی که داریم کائتوزین هم یه مقدار خاصیت زد میکروبی داره پس این هم یه که خیلی خوبه با یه کمپتواله زمی زم تاکسیک که اون هم خیلی مهمه توی مسئله دندان پزشکی به کلن وقتی ما فکر می‌کنیم این بیومدیکال انژینیرنگ خیلی مهمه که ماده هایی که استفاده می‌کنیم بایو کمپاتیبال باشه یکی یعنی به بدن انسان جور در بیاد پس مرحله دو دوم مرحله بعدن قدم بعدی که ما میخواهم انجام بدیم که این آزمایش را تو کلینیک بکنیم یعنی تو خود دهان جایی که هم میکروب هست هم بالا اسیدی و ترشوه هست هم فضا خیلی فرق میکنه و اون چالشیه که برای آینده داریم و امیدواریم که بتونیم با کمک دوستان دندانپزشک پیزشک عزیز و همچنین مهندسای بایومدیکال انژینیرینگ بتونیم این پروکت داریم این ژلی که داریم بتونیم توصیهاش بدیم که قابل استفاده باشیمعالی آدینجان حجیر میخوایم ما رو ببریم پیهنگ ممنون. فقط 395 دلار برای این پبللنت دندان <متس> کجا رفتی ؟ رفتم پیش دکتر داکتردان روزن آی سی او آCOی با 25 سال تجربه این همه متخصص در این شهره راست میگی درسته ولی تخصص رو میشه در از دو تا سه سال از هر دانشگاهی گرفت اما عزیزم 25 سال تجربه هشت دندان را نمیتونی هر کجا پیدا کنی و اکنون مطب جدید در شهر اوروین افتتاح شد کاهش وزن تنظیم قند و کلسترول خون کمر باریک بدون احساس گرسنگی با گرین کافی بین 3108587006 و جوان as universal city california اینجا k i r n 670 a m سیمی ولی لس آنجلس mars های دانش برنامه از همینار گرامی، شهندگان عرجمن، همونطور که گفتیم، پای گفتاره سرکار خانمی دکتر مرادیان نول دایگ و دکتر مریم نفواب هستیم برامون از مینای دندان و پیشرفت هایی که شده در ساختن موادی که بتونه اون رو بازسازی بکنه و با کارش رو خوب انجام بده شنیدیم. تلفن ها رو باز می‌کنیم 323-512-7264 و به پرسش های شما، پاسخنده سرگاه هم نباب شما هم دکتر نباب شما سوال داشتید خواهش میکنم دکتر. اگر اجازه بدین سوال اول من از خانم دکتر مرادی هم بپرسم خواهش میکنم پجوهش های شما بسیار هیجان انگیزه ما دندون پزشگاه خیلی همچین هپی نیستیم و که دندون های رو درست کنیم خیلی خیلی هیجان انگیزه فقط یه سوالی که بر من پیش میاد اینه که آیا این جلی که شما دارین درست میکنین، روش کار میکنین و با بمیده خدا هر زودتر به بازار میدین، آیا این جلو ما باید روی ما میتونیم برای دندونایی که آردی پوسیده شده استفاده کنیم یا برای مثلا یه چیزی مثل سیلند برای گوهایی که عمیق هست یا در چه مرحله ما میتونیم این جلو استفاده کنیم؟ سوال خیلی عالی و به جایی هست. مرسی از این سوالتون. در این مرحله که ما داریم کار میکنیم این جل برای اون پوسیدگی که فقط اوله مرحله اوله که اینا رو به انگلیسی بهش میگن white spot, orthodontic white spots بله. or اه، اه، incipient carries or early carries اینا نقطه هستن که خیلی کوچیکن که خیلی شما بهتر از من میدونید با چشم معمولی بله. دیده نمیشه پس اگه این جلو ما بذاریم روی مینای دندون کم کم موادی که توش هست Penrate نفوذ می و ما امیدواریم که بتونیم اون مینای دندون ها بسازیم. قبل از اینکه ها زیاد بشه. به خاطر اینکه موقعی که دیگه باکتری ها زیاد شده دندون پوسیده شده و اون حفره بزرگ شده رسیده بله. به آج It's too late. بله اون موقع ما داریم استراتژی های دیگه ای داریم. که بتونیم باک بسازیم یعنی مواد زیادی درست کنیم که بتونید اون مواد مثل پر کردن رو دندون بذارید بخواید اینکه لایهایی که ما داریم الان درست می کنیم حتی به یک میلیتر هم نرسیده اینا هایی که مثلا شاید 200 میکرون یا سیصد میکرون این کسهایی که من نشون میدم اکسای میکروسکوپ الکترونیه پس واقعا کافی نیست اگه پوسیدگی پوسی امیق داشته باشین کافی نیست ولی واسه چیزی که واقعا ممکنه خوب باشه اروژنه به خاطر اینکه اروژن سطح بزرگه ولی عمرش کمه درسته. and it's perfect به خاطر اینکه شما می دونید وقتی می خاید کنده کنده کاری بهش میگن ریلی بله وقتی کنده کاری دندون می کنید مقدار زیادی از مینای سالم دندون از بین میره مجبورین بله بله بله به خاطر اینکه و من چیزی که یاد گرفتم هفته پیش که 70 درصد ریسک هست که پسیدگی دندان برگرده به خاطر اینکه بکتری اونجاست. پس ما فکر میکن که نه فقط برای پوسیدگی ولی برای مسائل دیگه این می تونه خوب باشه ولی باید تاکید بکنم که واقعا هنوز به بازار نرسیده اینا کارهایی که ما تو آزمایشگاه می کنیمیم هنوز پس خواهش میکنم زودتر <تصفح> کارهای این ویرو رو تموم کنیم برای اینکه خیلی هرج اننگ شته باشیم مخصوصاً برای کسایی که بعد از درمان های ارتودانتیک بله به قول همه میدونن که این قسمت های سفید که روی دندون میاد ویت سپات بهش میگن بله بله خیلی زیاده بله خیلی زیاده بله بله و ما خب بالاخره هم خود بچه ها خیلی کانسرن هستم هم پدر مادر ها خیلی کانسرن هستن در مورد اینکه به هم انقدر زیاد نیست که بتونیم پرش کنیم یا مواد دندانی استفاده کنیم انقدر هم کم نیست که بتونیم کنیم. بله. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما بسیار سپاسگزار دوستانش سیجره در هستند و مشغول ما ادامه میدیم بحثمون رو خم دکتر نواب دوست دارید از کارهایی که میکنید خبرای تازه خواهش میکنم سپاکی برمیدارین که کمک کنید به ما که کاسمتیک خواهش میکنم با البته با, با پژوهشی هایی که خواهیم دکتر دارن انجام میدن کار کاسمتیک بیشتر فقط محدود میشه به کارهای 크라운 و وینیر و لومینیر ان که اصلا دیگه پوسیدگی نداشته باشه که ما به خاطر پوسیدگی مجبور بشیم دندونا رو یه مقدار بیشتر خراب کنیم تا بتونیم دوباره درستش کنیم ولی به هر حال این ایروژن که شما فرمودین من خیلی کانسرن هستم بر اینکه خیلی خیلی مریضای زیادی دارم که مشکل ایروژن دارن اصلا پوسیدگی وجود نداره و اکثرا در دنیای متاسفانه حیجان انگیز امروز این حیجان ها شب وقتی میخوابیم بیشتر دندونامون رو تینچه میکنیم ببخشید بیشتر روی هم فشار میدین تو این دنیای استرزای امروز متاسفانه مشکل ایروژن خیلی زیاد شده و کاری که برای ایروژن میکنن الان قبل از اینکه شما این جلو به بازار ارائه بدین ما دو تا راه براش داریم یکی این که با گرافتای اکشلی تازه من متوجه شدم که سه تا راه وجود داره ولی به حال یا میتونیم روی همون قسمت ایروژن دوباره گام رو بذاریم که این به حال این یه پروسیجر سختی اصلا صحبت کردن در موردش هم یه مقدار دردناکه برای اینکه باید یه تیکه از لیزر رو از قسمت سقف دهن برمی‌دارن دوستان پریودانتیست ما و گرفت میکنن روی این قسمت روژن کار دیگه که انجام میشود این که از مواد دندانی استفاده کنیم مثل باندینگ ها <تصفح> که همرنگ دندون هستن که البته خیلی خوشایند نیست ولی به حال مریضا پوسیدگی مریضا مزن میخوام حساسیت به سرما و گرما میگیرن برای همین این خیلی خوبیه حالا یه پروسیژر دیگه است که من خیلی خیلی منتظرم چون این آقای دکتر پتنت کردن این پروسیجر رو و خودشون فقط ارائه میدن خیلی منتظر هستم که برم این اینو یاد بگیرم به اسم پین هولد سرجیکال تکنیک PST که در اصل بدون اینکه این سیژن بدیم بدون اینکه یه تیکه یه لحظه رو از سقف دندون برداریم و روی این قسمت ایروژن بذاریم اکچولی با یه پین هولد یه به اسطلاح سوراخ خیلی کوچیکی بالای لسه انجام میدیم و لسه رو میکشیم روی این قسمت ایروژن که به هر حال این یه چیزیه که من احساس کردم بهتر از مخصم که الان شما فرمودیم که در این قسمت هنوز مینای دندون میتونه دوباره خودش رو بسازه پس شاید ما کنیم هیچ کدوم از این پروسیجن رو انجام جمعه. ندیم فقط منتظر باشیم شما این جد, این جد... رو به بازار بدین امیدوارم واقعا امید... امیدوارم که تمام این پژوهشایی هایی که میکنیم یک روز قابل استفاده باشه برای مردم و برای دندان پزشگاه یه سوال دیگه هم که من پیش میاد حالا اگر پوسیدگی بین دندون باشه که مثلا چون یه کانتکتی هست بین دو, دو دندان اگر اونجا بله نه اون سطحی که به اسطلاح میبینیم یا سطحیه که باشه میجویم نه اگر بین دندون باشه و ما با early detection یعنی با اکس ری یا با هر چیزی دیگه متوجه بشیم که این یه مقدار پسیدگی هنوز توی این عمله ولی وجود داره آیا این جل میتونه اونجا استفاده بشه؟ من میگم چرا نه به خاطر اینکه این, این یه مشکل بایومدیکال انژینیرینگه به خاطر اینکه به خاطر همین من دوست دارم با, با دانشجو مهندسی کار کنم فقط کافیه فکر چطور، چه دیوایس میتونین درست کنین که بتونین این ژلا برسونین به اون به خاطر اینکه جل خیلی نرمیه میتونه نفوذ کنه بین دندان من با زمین عکس میخوام نشون، نشونتون بدم ایده ما اینه که بتونیم از دیوایسای استفاده کنیم ممکن همون گارد خودمون باشه که شبا میزارین روش مهم. یا اینکه چسبایی که میزنن برای برای... یا حتی پیند <تصفيق> اگه بتونیم بالاخره یه راهی پیدا کنیم که این جلو داخل بکنیم اه... چرا نه اگه جلو بذاریم توی گارد بله. گارد بذاریم شب بخوابیم همینطوری که دارین میخوابین اینای دندونتون بزرگ میشه البته Fantastic. فرق ساینتیست همینه یعنی ماها دوست داریم که تصور کنیم ماها هیچ چی میگن هیچ لیمیتی نداریم و خطرناکه بعد مواظب بود ولی خیلی خوبه به خاطر که میتونید از تصور خودتون استفاده کنید همینه که میگن ایمیجینیشن <تصفح> <تصفح> پس من به دانشجو خودم اجازه میدم میگم میدونید چیه؟ الان نگران این نباشین چی پیش میاد در کلیک فکر فکرنی به میچه ایده هایی میتونید بیارین که بتونیم روش کار کنیم بعدن کم کم این تکامل پیدا میکنه و ساین زمینه یعنی علم همینه نمیتونید فقط اگه ما فقط نگران باشیم که نشه وقت انجام نمیدیم پس من امیدوارم که یه راهی پیدا کنیم که بشه کاملا درست <تصفح> دوست اا جان وقت داریم یکی دو دقیقه پیش از پیام یا بریم به پای uh, وقت داریم دو دقیقه اا دو اسم میترا می نویسن که شما برای اینکه ایده بگیرید که چه کنیم که اونهایی که آسیب پذیرن از نظر ژنتیک تا براشون چاره پیدا کنید آیا مثلا هیچ وقت در دنیا دندان پزشکی و تحقیق دندان پزشکی کسانی رفتن دنبال این که ببینن چه رئیس هایی چه افنک گروپ های دنداناشون بهتره یا افرادی که داستان خیلی پیچیده است با اطلاعاتی که الان پیدا کردیم این هفشت هستال گذاشته که همه چی نتورکه همه ی جنانتورکن این بی اندازه بله. کار رو باشکل کرده ولی چه،, چه چیز اینجور برسی ها یا حتی حیوانات آیا حیواناتی هستن که دنداناشون خیلی آسیب پذیر نباشه و به ما ایده بدن من چند تا چیزایی که می دونم بهتون می گم اگر که شما خواستین تکمیلش کنی بله می کنیم بعد از پیام بگیم بلد بلد. خیلی ممنون آیدی جان بریم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 مین سه‌شنبه ساعت 9 صبح خانم ژیلا بدیی شرکت فارمیس راجع به انواع بیمه‌ها و امکان استخدام شرکت فارمیس اطلاعات مفیدی با شما در میان می‌گذارد 310 659 5950 670 AM لس آنجلس مارکس های دانش برنامه ای از همجمن استادان و پجوشگران ایدانی همینار گرامه ای شاندگان رجمند همونطور که گفتیم پای گفتار سرکار خانم دکتر مولادیان رولدارد و خانم دکتر مریان نفاپ هستیم برمون از مینای دندان گفتند و پیشرفت هایی که شده در ساختن مواد و متیریال هایی که بتونه کمک کنه که این جاهایی که رفتگی هست، خردگی است گرفتاری های سلامت و کارهای دندان هست اینها رو باسازی کنند و به اصطلاح در مدتهای طولانی اینها بتونن به ما خدمت بکنند و سؤالی رسید از خانم میترا که آیا ما ایده گرفتیم از مثلا، گروه های خاص نجات های خاص افراد خاص که اونایی که دندونشون خیلی سالمتر و بهتره تا 16 تا ساله گیش نداره در محول اونایی که از بچگی حتی بیم که مواوج به این پلنت و غیر و غیره چه جوری اینا میتونن کمک بکنن؟ میدونم خیلی پیچی دستمثل محیطی و ژنتیک ولی من یه مدار این میشن؟ <تصفيق> تا اونجا که میدونم میدم و امیدوارم که کمک بکنه به این سوال همونطوری که گفتم عوامل خارجی و داخلی هستن اما داخلی همون اوامل جنتیکی ژنتیکیان عوامل خارجی اواملی هستند که که یا کمک میکنن یا اینکه وضعو بدتر میکنن اون عاملی که دربارش صحبت کردم مریضی که بهش میگن املوجنسیس امپرفکتا یعنی که ساختن مینای دندان پرفکت نیست املوجنسیس یعنی ساخته شدن مینای دندان اون جنایی که همین پروتئین امیلوجنین اگه یش توی اون یه میوتیشن باشه یا یه تغییراتی باشه ما میتونیم که مینای دندان خرابه و این مشکل تو اروپا بین هر نفر مثلا. یه نفری مشکل داره ولی در آمریکا شایع نیست در آمریکا بین هر چارده هزار نفری شاید یک نفری نداشته باشن پس ما داریم من میدونم که در کشورهایی مثل ترکیه میدلیست تو چی میگن؟ همون اطراف خواهوری میانه بیشتره تا آمریکا. پس اون این نارهتی ژنتیکی که ما میدونیم حالا این تازگی تو علم کاریولوژی یعنی علمی که مال همون پیسپوسی پوسیدگی دندان هست که خیلی از باکتریات سر میکنن یاد بگیرن خیلی از جنا سر میکنن یاد بگیرن ما میدونیم که مردم هستن که جناشون اصلا برای محکم بودن مینای دندان خیلی بهتره که ممکنه دوبار دندانشون رو نمیشورن سه بار نمیشورن یک بار میشورن ولی هنوز دندان خوبی دارن ولی اینم میدونیم که کلا کنترل کردن اون محیط دندان خیلی مهم تره اینی که بهداشت دندان کربوهیدرات اضافی یعنی شرینی اضافی نباید باشه کسایی هستن که بزاق دندانشون خیلی سالم تره جنتیکی خیلی سالم تره پس میتونه اون اسیدی فضای دندان خونسا کنه انظیماش خیلی, انزیماش خیلی سالمتره ما میدونیم کسایی که سی سال سیگار کشیدن مشکل دندان زیاد دارن پس تمام اینا دوباره محیطه ولی من فهم کنم ژن یه مشکل دیگه که بازم باید بیشتر پژوهش بکنیم خواهیم دکتر نفواب پایا میپرسه که چه توصیحایی میتونیم به ما بکنید که باعث بشه بیشتر دنبال کنیم مسئله مصفاک زدن مرتب رو فلاس زدن شب رو ارزن بزرگتون بعد میپرسه آیا ویتامین دی چیزی تازگیا مطرح شده که برای بس گذشت از پسر اصطخار و جوینت و اینها مطرح شده که اثر امومی داره در کل بدن حتی به قلب رسیده که ما دیمونی که کمبود ویتامین دی داریم این پار سال ثابت شد دو, دو سال پیش شک داشتیم الان میگن که یک درصد زیادی از ما کمبود ویتامین دی داریم مخصوان اگر به خاطر ملانوما آفتاب نمیگیریم یا خوب تغذیمون خوب نیست مثلا این سان بلاک ها باعث میشه که ویتامین دی نسازیم تو پوستمون و غیره و غیره حال میپرسن که آیا چیزی میدونیم راجب این که ویتامین دی با دندون ارتباط داشته باشه و حالا میگه که کمکم می کنید که من مرتب باشم در مسفارک زدن و فلاس کردن و چه توصیه هایی هست برای اینکه که به دندونمون بیشتر کمک کنیم بله خواهش میکنم والا من باید به آقای جون و به تمام کسایی که این برنامه رو میشتم فقط بگم که مسئله بهداشت دهان یه چیزیه که مثل هر چیز دیگه ای عادت میشه. فقط کاری که ما باید بکنیم باید یاد بگیریم که اولا اول فلاس کنیم و بعد براش کنیم. هنوز من مرزایی دارم که از من میپرسند که میشه اول براش کنیم بعد فلاس کنیم. که نه افکت بیشتر مؤثره اگر که اول فلاس کنیم حداقل دو بار در روز فلاس کنیم. و اگرم خیلی بیزی هستین خیلی واقعا واقعا نمیرسین که مسواک بزنین برعکس اون چیزی که فکر میکنن که بهتر صبح که از خواب بیدار میشیم مسواک بزنیم عقلا اگر میخواین یه بار بزنین شب بزنین دلیلش هم بسیار واضحه در مسئله پوستیدگی حالا هم تو که خام دکتر فرمودن مسئله ژن البته خیلی مهمه بزاق دهان مثل میزان اسیدیتی بزرگ دهان خیلی مهمه ولی اینجوری تصور کنین سه تا دایره رو در نظر بگیرین که این سه تا دایره نقطه مشترک دارن اصلا اساس پوسیدگی اینه که شما باید یک بکتوری داشته باشید، به این بکتوری های قضا بدین و این بکتوری محیطی میخوان یه جایی میخوان که استیبل بشن که اونم مینای دندونه حالا این ستا رو روی هم بذارین به ما پوسیدگی میده شما همه بوزاق دهان دارای باکتری هستن که البته من بخوام نکست صحبت میکردم در محیطی که اون پروتئینو گذاشتن هنوز متاسفانه باکتری رو وارد نکردن اینم یکی از جزایی که مثل که با از روش بیشتر کار بکنه وقتی باکتری شما دارین انیوی anyway, توی بوزاق دهان شما باکتری هست و شما این عمل دندونم که دارین تنها چیزی از این ست مشترک ستای دایره مشترک اون نقطه مشترکش پوشیدگیه تنها چیزی که شما شما روش کنترل دارین اون مواد غذایی یا به اصطلاح همون بیشتر مواد شکری که در اصل اونجا میمونن و باکتری‌ها روش کار میکنن اسید میسازن اون اسید عملو حل میکنه و باعث پسیدگی میشه پس تنها کاری که شما باید بکنین همون یه،, یه،, یه مسئولیت بزرگ با برای در دهنمون دارین و اونن که تمیز نگهش دارین پس اگر من بخوام یه چیزی به شما بگم یه نکته بهتون بگم که این روز سیزده بدر بتونین استفاده ازش بکنین اینکه خواهش میکنم وقتی کارتون تهم شد سیزده بدر گشتین و شیرنی حساب خوردین کاری که میکنین یه فلاس میکنین فلاس هم اگر فلاس هر نوع فلاسی که دوست دارین یعنی اصلا مهم نیست که چه نوعی استفاده بکنین بعضی اون پررسن آن وکس باشه بعضی اونرسن وکس باشه مینت باشه غیر مینت باشه شما فلاس کنید ادازه مدار که چه نوع فلاصسی باشه و بعدش هم امشب حتما مسواک کنه یعنی شما کنترل روی بکتری های دارین و میتونین به سلاملا مواد غذایی که به باکتریا ها میرسه شما میتونید اونا رو از بین ببرید پس دهانشویی خیلی مهمه بعضی متاسفانه من مرضی دارم که فقط دهانشویی استفاده میکنن و ابدا این نمیتونه جای فلاس و مسواک زدن فیزیکلی رو بگیره متاسفانه ولی خب اگه دوست دارین مرتبش اینه فلاس کنین براش کنین و بعدش هم از ماثواش یا ام مثل هم یادم رفته مایه شستن شستشوی دهان بله, بله. بله. ماثواش میتونی استفاده بکنی گفته میشه که Uh, بیشتر ما فلاس رو uh, ندرست به کار میبریم و ف... خیلی فکر میکنیم باید رفت اون پایین روی لحظه مثلا ذرات غذا رو uh, دور کرد و غیره غیره که این جمع نشه و افونت بده ورم بده اینا بلی تنها... درستش اینه که این دو لبه تیزی که فلاس تماس داره بالا و پایین برین و اون رو تمیز کنیم ببینین تنها نکتهی که داره شما فکر کنین که هر دندونی یه سطحی داره وقتی این دو تا دندون که به هم دیگه آها. در اصل یک کانتاکت دارن به هم وصل هستن بین این دو تا یه لسی هست که پپیلا اسمشه و ما کاری که میکنیم فلاس شما باید بغل کنه دندونتونو از لانگ است که شما بغل کنین خود طبیعت انقدر قشنگ به ما یاد داده که راحت میتونیم بریم به سمت پایین چون به ما یه پثوی داده یه راه قشنگ داده فلاس خودش تا پایین میره و میارین بالا بیرون دوباره دندون بعدی کسی که خیلی هستن که اشتباه میکنن میرن بین دندون مثلا فرض کنین دست راست همون رو که پایین هست میکشن به سمت دست چپ که این در از شما لثه بین دندانیتون رو یا پپیلا رو در از شما خراب میکنین دمجش میکنین پس بهترین راه فلاس کردن اینه که از اون بالا قشنگ یه پتفهی هست و هم راه, راه و دندون خودش به شما نشون میده این دندون میکنین فلستتون میایین تشریف میارین پایین می دوباره بالا و میرین توی دندونه برلی عالی خا من آی ها که آیا شما در تجربه این چند دهیتون اینجا برخوردین به مسئله ویژه که ایرانیا داشته باشند در مقابل سایر مهاجرین سایر گروه ها و آیا عوض شده ب چون تو بعضث بیماری ها نسبت به زمانی که در ایران بودن اصل مهاجر بعضث بیماری ها کم شده بعضی زیاد شده آیا میشه چیزی گفتداری مورد که چه هست هستم ایرانونیا؟ البته من مت... متاسفانه خیلی مریض ایرونی ندارم کامیلیت ایرونی خیلی مرز من قدمشون روی چشم ولی به هر حال مهم. چیزی که من الان متوجه شدم توی نسل جدید مهم. که الان مقایسه میکنم با بیشتر مرزای آمریکایی من این که الان به مسئله بهداشت دهانشون و اینکه که هر شیش مایه بار باید کلینیک بگیرن واقعا وقتی ما ایران بودیم اصلا چیزی به اسم دنتال کلینینگ اوری 6 مونت وجود نداشت که ما حتما بریم پیش دندونپزشکمون بگیم ما میخویم کلینیک حالا یا به صورت عمیقش یا به صورت سطحی کلینینگ بخوام بگیریم و خیلی خیلی خوشحالم که بچه هاشونو میارن بچه هاشونو میارن که به اصطلاح کلینینگ بگیرن فلوراید وارنیش بگیرن چون همطور که شما هم فرمودیم خانم دکتر یکی از چیزایی که این عمل دندونو خیلی محکم تر میکنه در از وارنیش فلورایت هست این خیلی خیلی جالبه یعنی من چیزی که می بینم بسیار به بهداشت دهان و دندانشون می رسن بسیار سفرز بزر. دوستان گذاشتن آخرش وقت زنگ زدن وقت نداریم برای پاسخ دادن. خواهی یه دونه جواب بدیم پس به دوست عزیزمون ببینیم سوالشون چیه یک لحظه جونم بذارم بذارید استاسیش جونم بذارم خواهش می‌کنم با تشکر از تو خواهش میکنم اگر خانم دکتر بتونن توضیح بدن که آخرین تحقیقات در مورد کاشتن استمسل برای درآوردن دندون طبیعی آخرین تحقیقاتی که شده ایشون چه اعتباری داره یا لطف کرده بسیار سفاز من فکر بله بفهم من فکر می‌کنم شنیدم سواله سوال خیلی به خیلی ممنون از این سوال بله است اتفاقا نشون داده ما میدونیم الان توی موش‌ها که از تمسل استفاده میکنن اگر که بدونین یه موقع یه مرکبی از مزنکال استم سلز و اپیتلیال استم سلز کردن دانش در ژاپن اینو کاشتن توی فک موش و نشون دادن که این دندون رشد کرده و از فک زده بیرون در آمریکا من میدونم خیلی از دانشمندان در این مساله دارن کار میکنن و مهم اینه که چه استم استفاده بشه و چه موادی برای سیگنالینگ و چه شرایطی درست بشه که اون شکل اصلی دندان بتونه درست بشه به تمام بافتایی که دندان احتیاج داره مثل مینای دندان آج دندان سمنتوم که همون سیمانه دندانه و پاپ درست بشه ولی من فکر می‌کنم که اینم هم در آینده خواهد آمد که شما دنگان بکنید. من شرمنده از دوستانی که پشت خط هستند و روی خط هستند و نترسین بهشون جواب بدیم به علت بوده وقت. باز یاداوری میکنم لطفاً تشفی ببرین به A P S I H برای شرکت در جشن بزرگداشت فارغ تحصیلمون در 18 می. A P S I H اگه تشفی ببرین اونجا مثلا از راه گوگل همه چی رو میبینید. 17امین جشن بزرگداشت داشته تحصیل برگزار میشه. سرکار خواهیم دکتر والدک، سرکار خواهیم دکتر نواب بسیار سپاسگزار از وقتتون و اطلاعات ارزنده که ما بردید خیلی آینده. در آینده در خطم باشیم روز روز خوش خوش های دانش برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایدان